بنگرزه جهان چه طرف بربستم هیچ از حاصل عمر چیست در دستم هیچ شمع ترابم ولی چو بنشستم هیچ من جام جمم ولی چو بشکستم هیچ چون جان بهلب آمد چه نشاپور و چه بلخ پیمانه چو پرشوت چه شیرین و چه ترخ مینوش که بعد از من و تو ماه بسی از به بهقره آید از قره به سرخ. ای آرز تو نهاده بر نسرین تر، روی تو فگنده بر بطانت چین تر، دهی قمزه تو دادشه بابل را، از و رخ و فیل و بیزق و تر. این غافله عمر عجب میگذرد در دریاب دمی که از ترب میگذرد، ساقی غم فردای حریفان چه خوری، پیشار پیاله را که شب می